موسیقی طریق هدایت بسم الله الرحمن الرحیم با قسمت هجده از مجموع گفتگوهای صوتی طریق هدایت در خدمت شما شنوندگان گرامی هستم این مجموع گفتگوهای صوتی به بررسی آیات قرآن میپردازد در این راستا برنامه هجدهم رو به موضوع و سرگذشت موسای نبی اختصاص دادم موسای نبی در شرایطی مبعوث میشه که بدترین جنایات به وسیله فرعون انجام شده فرعون به برتریجویی در مصر پرداخته و مردم رو دچار تشتت و پراکندی ساخته بود وی قوم بنی اسرائیل رو به استضعاف کشنده و برای دوام حاکمیت ننگین خودش پسران رو به قتل می و زنها رو زنده نگاه می داشت اعلاوه بر همین انحرافات و فسادها فرعون ادعای ربوبیت نیز داشت یعنی خودش رو بو عنوان یکی از ربهای بزرگ عالم حاکم بر سرنوشت توده های مردم میدونیس آری در شرایطی که فرعون برای تثبیت پایه‌های نظام فاسد طبقاتی خودش از هر گونه ظلم و ستم بر مردم عبایی نداشت در این مقطع الله متعال موسی رو به سوی اونها گسیل داشت تا پیام رهایی بخش و ادالت بخش توحیدی لا اله الا الله رو سر بده در این راستا قرآن کریم با پرداختن به این دوران سرگذشت موسی نبی رو برامون دقیقا به نمایش میذاره حال آیات مرتبط با این موضوع رو با هم مرور کنیم سوری قسس آیات سوم الا از گزارش حال موسی و فرعون رو برای آگاهی مردمی که ایمان می به درسی بر تو میخوانیم. فرعون در سرزمین مصر سر و مردم آن را فرق فرقه ساخت فرقی از آن را پس می داشت. پسرانشان را سر می‌برید و زنانشان را برای بحرکشی زنده بر جای می که وی از فسادکاران بود خواستیم بر کسانی که در آن سرزمین فرودست شده بودند منت من دهیم و آن را پیشوایان گردانیم و ایشان را وارس کنیم و در زمین قدرتشان دهیم و از طرفی به فرعون حامان و لشکریانشان آنچرا که از جانب آنان بیمناک بودن نشان دهیم و به مادر موسا وح کردیم که او را شیرده و چون بر او بیمناک شدی او را در نیل بینداز و من ترس و اندوه مدار که ما او را به تو باز می و از پیام پیامبرانش قرار می دهیم پس خاندان فرعون او را از آب برگرفتند تا سر دشمن جان آنان و مایی اندوهشان باشد آری فرعون و حامان و آنها خطا خطاکار بودند و همسر فرعون گفت این کودک نور چشم من به تو خواهد بود او را نکشید شاید برای ما سودمند باشد یا او را به فرزندی بگیریم ولی آنها خبر نداشتند و دل مادر موسا توی گشت، اگر قلبش را سوار نساخته بودیم تا از ایمان آورندگان باشد چیزی نمانده بود چون راز را افشا کند و به خواهر موسا گفت از پی او برو پس او را از دور دید در حالی که آنها متوجه نبودند و از پیش شیر دایگان را بر او حرام گردانیده بودیم. پس خواهرش آمد و گفت آیا شما را بر خانواده ای راهنمایی کنم، که برای شما از وی سرپرستی کنند و خیرخواه او باشند پس او را به مادرش بازگردانیدیم تا چشمش به دو روشن شود و غم نخورد و بداند که وعده الله درست است ولی بیشترشان نمیدانند و چون به رشد و کمال خویش رسید او حکمت و دانش عطا کردیم و نیکوکاران را چین پاداش میدهیم و داخل شهر شد بیان که مردمش متوجه باشند پس دو مرد را با هم در زد و خرد یافت یکی از پیروان او و دیگری از دشمنانش بود آن کس که از پیروانش بود بر ضد کسی که دشمن وی بود از او یاری خواست پس موسی مشتی بدوزد و او را کشت موسا گفت پروردگارا من بر خیشتن ستم کردم مرا ببخش پس الله از او درگذشت که وی آمرزنده و مهربان است موسی گفت پروردگارا به پاس نعمتی که بر من ارزانی داشتی هرگز پشیبان مجرمان نخواهم بود صبحگاهان در شب بیمناک و در انتظار ای بود ناگاه همان کسی که دیروز از وی یاری خواسته بود باز با فریاد از او یاری خواست موسا به او گفت براستی که تو آشکارا گمراهی و چون خواست به سوی آنکه دشمن هر دویشان بود حمله آورد گفت ای موسا آیا میخواهی مرا بکشی؟ چنانکه که دیروز شخصی را کشی تو میخواهی در این سرزمین فقط زورگو باشی و نمیخواهی از اصلاح باشی و از دور افتاده ترین نقطه شهر مردی دوان دوان آمد و گفت ای موسا سران قوم در تو مشورت میکنند تا تو را بکشند پس از شهر خارج شد من جدا از خیرخواهان تو هم موسا ترسان و نگران از انجا بیرون رفت در حال که میگفت پروردگارا مرا از گروه ستم نجات بخش و چون به سوی شهر مدین رونهات با خود گفت امید است پروردگارم مرا به راه را صدایت کند و چون به آب مدین رسید گروهی از مردم را بر آن یافت که دامهای خود را آب می دادن و پشت سرشان دو زن را یافت که گوسفندان خود را دور می موسی موسا گفت منظورتان از این کار چیست؟ گفتند ما به گوسفندان خود آب نمیدهیم تا چوپانان همگی گوسفندانشان را برگردانند و پدر ما پیری سال خورده است پس برای آن دو گوسفندان را آب داد آنگاه به سوی سایه برگشت و گفت پروردگارا من به هر خیلی که سویم بفرسی سخت نیازمندم پس یکی از آن دو زن در حالی که با حیا گام برمی‌داشت نزد وی آمد و گفت پدرم تو را میطلبت تا تو را به پاداش آب دادن گوسفندان برای ما دهد و چون موسی نزد او آمد و سرگذشت خود را بر او حکایت گفت وی گفت متست که از گروه ستم کاران نجات یافتی یکی از آن دو دختر گفت ای پدر او را استخدام کن چرا که بهترین کسی است که استخدام می کنی هم نیرومند و هم در خور اعتماد است گفت من می یکی از این دو دختر خود را که مشاهده می کنی به نکاه تو در بین این که هشت سال برای من کار کنی و اگر ده سال را تمام گردانی اختیار با تو است و نمیخواهم بر تو سخت گیرم و مرا ایشا الله از درست کاران خواهی یافت موسا گفت این قرارداد میان من و تو باشد که هر یک از دو مدت را به انجام رسانی بر من تعدی روانه باشد و الله برانچه می گویم وکیل است و چون موسا آن مدت را به پایان رسانید و همسرش را همراه برد آتشی از دور در کنار تور مشاهده کرد به خانوادی خود گفت اینجا بمانید که من آتشی از دور دیدم شاید خبری از آن یا شعله آتش برایتان بیاورم باشد که خود را گرم کنید پس چون به آن آتش رسید از جانب راست وادی در آن جایگاه مبارک از آن درخت ندا آمد که ای موسا منم من الله پروردگار جهانیان و فرمود اصای خود را بیفکن، پس سندید که آن مثل ماری میجنبت پوش کرد و برنگشت ای موسا پیش آی و متاس که تو در امانی دست خود را به گریبانت ببر تا سپید بیگزند بیرون بیاید و برای رهایی از این حراس بازویت را به بچسبان این دو برخان از جانب پروردگار توست که باید به سوی فرعون و سران او ببری زیرا آنان همبار قومی نافرمانند گفت پروردگارا من کسی از ایشان را کشتم میترسم مرا بکشند و برادرم هارون از من فسیحتر است پس او را با من به دست یاری گسیل دا تا مرا تصیب کند زیرا می مرا تکسیب کنند فرمود بزودی زودی بازویت را به وسیله برادرت نیرومند خواهیم کرد و برای شما هر دو تسلطی قرار خواهیم داد که با وجود آیات ما به شما دست نخواهند یافت شما و هر که شما را پیروی کند چیره خواهید بود پس چون موسا آیات و روشن ما را برای آنن آورد گفت این جز سهری ساختگی نیست و از پدران پیشین خود چنین چیزی نشنیده ایم. و موسی گفت پروردگارم به حال کسی که از جانب او رهنمودی آورده و نیز کسی که فرجام نیکوی آن سرا برای او استاناترس است در حقیقت ظالمان رستگار نمیشه و فرعون گفت ای بزرگان قوم من جز خیشتن برای شما خدایی نمیشناسم پس ای حامان برایم بر گل آتش بیافروز و برجی بلند برای من بساز تا شاید به حال الله موسی اطلاع یابم و من جدا او را از دروگویان میپندارم و او و سپاهیانش در آن سرزمین بناحق سرکشی کردند و پنداشند که به سوی ما بازگردانیده نمیشوند تا او و سپاهیانش را فرو گرفتیم و آنان را در دریا افکندیم بنگر که فرجام کار ستمکاران چگونه بود و آنان را پیشوایانی که به سوی آتش میخوانند گردانیدیم و روز رستاخیز یاری نخواهند شد در این دنیا لعنتی بدرغه آنان کردیم و روز قیامت نیز ایشان از جمله زش رویانند و براسی بعد از آنکه نهست های نخستین را هلاک کردیم به موسی کتاب دادیم که روشنگری و رحنمود و رحمتی برای مردم بود امید که آنان پند گیرند سوری اعراف آیات 103 156 انگاه بعد از آنان موسا را با آیات خود به سوی فرعون و سران قومش فرستادیم ولی آنها به آن آیات کف زیدن پس ببین فرجام مفسدان چگونه بود و موسی گفت ای فرعون بی تردید من پیامبری از سوی پروردگار جهانیانم شایسته است که بر الله جز سخن حق نگویم من در حقیقت دلیلی روشن از سوی پروردگارتان برای شما آورده هم. پس فرزندان اسرائیل را با من بفرست فرعون گفت اگر معجزه آوردی پس اگر راست میگویی آن را ارائه بده پس موسی اسایش را افکند و بناگاه ماری آشگاه شد و دست خود را از گریبان بیرون کشید و ناگهان برای تماشاگران سپید و درخشنده بود سران قوم فرعون گفتند بیشک این مرد صاحبی داناست میخواهد شما را از سرزمینتان بیرون کند پس چه دستور میدهید گفتند او و برادرش را بازداشت کن و گردآورندگانی را به شهرها بفرست تا هر ساهر دانایی را نزد تو آرند به ساهران فرعون آمدن و ساهران نزد فرعون آمدند و گفتند آیا اگر ما پیرو سویم برای ما پاداشی خواهد بود گفت آری و مسلما شما از مقربان دربار من خواهید بود گفتند ای موسا آیا تو می‌افکننی یا اینکه ما می افکنیم؟ گفت شما بیافکنید. و چون افکندند دیدگان مردم را افسون کردند و آن را به ترس انداختند و سحری بزرگ در میان آوردند و به موسی وحی کردیم اسایت را بیانداز پس انداخ و ناگهان آنچه را به دروغ ساخته بودند فرو بلید پس حقیقت آشکار گردید و کارهایی که میکردند باته شد و در انجا مغلوب و خار گردیدند و ساهران به سجده در و گفتند به پروردگار جهانیان ایمان آوردیم پروردگار موسی و هارون فرعون گفت آیا پیش از آنکه به شما رخصت هم به او ایمان آوردید قطعاً این است که در شهر راه انداختید تا مردمش را از آن بیرون کنید پس به زودی خواهید دانست دست ها و پاهایتان را یکی از شب و یکی از راست خواهم برید سپس همه شما را بهدار خواهم آویخت گفتن ما به سوی پروردگارمان باز خواهیم گشت و تو جز برای این ما را به کیفه نمی رسانی که ما به معجزات پروردگارمان وقتی برای ما آمد ایمان آوردیم پروردگارا بر ما شکی بایی فروریس و ما را مسلمان بمیران و سران قوم فرعون گفتند آیا موسی و قومش را رها میکنی تا در این سرزمین فساد کنند و موسی تو و خدایانت را رها کند فرعون گفت بزودی پسرانشان را میکشیم و زنانشان را زنده نگه میداریم و ما بر آنان مسلطیم موسی به قوم خود گفت از الله یاری جوید و پایداری ورزید که زمین از آن الله هست آن را به هر کس از بندگانش که بخواهد می دهد و فرجام نیک برای پریزگاران است قوم موسا گفتند پیش از آن که تو نزد ما بیایی و حتی بعد از آن که به سوی ما آمدی مورد آزار قرار گرفتیم گفت امید است که پروردگارتان دشمنان شما را حلاک کند و شما را روی زمین جانشین آنان سازد آنگاه بنگر تا چگونه عمل می کنید. و در حقیقت ما فرعونیان را به خوش سالی و کمبود محصولات دوچار کردیم باشد که عبرت گیرند پس هنگامی که نیکی و نعمت به آنان روی می آورد می این از برای شایستگی ماست و چون گزندی به آنان می رسید به موسی و همراهان شگون بد می زدن آگاه باشید که چشمی بد شگونی آنان نزد الله هست که آنان را به بدی اعمالشان کیفر می دهد لیکن بیشترشان نمی دانستند. و گفتند هر گونه پدیدی شگرفی که به وسیله آن ما را افسون کنی برای ما بیاوری ما به تو ایمان آورنده نیستیم پس بر آنان طوفان و مرخ و کنه ریز و قوک ها و خون را به صورت نشان های آشکار فرسادیم و باز سرکشی کردند و گروهی بدکان بودند و هنگامی که عذاب بر آنان فرود آمد گفتند ای موسی پروردگارت را به حدی که نزد تو دارد برای ما بخوان اگر این عذاب را از ما برطرف کنی حتما به تو ایمان خواهیم آورد و بنی اسرائیل را قطعا با تو روان خواهیم ساخت و چون عذاب را تا سر رسیدی که آنان بدان رسیدند از آنها برداشیم باز هم پیمان شکنی کردند سرانجام از آنها انتقام گرفتیم و در دریا غرقشان ساختیم چرا که آیات ما را تکذیب کردند و از آن قافل بودند و به آن گروهی که پیوسته می شدند، باختر و خاوری سرزمین را که در آن برکت قرار داده بودیم به میراث عطا کردیم و به پاس آنکه صبر کردن وعده نیکوی پروردگارت به فرزندان اسرائی تحقق یافت و آنچرا که فرعون قوم ساخته و افراشته بودن ویران کردیم و فرزندان اسرائیل را از دریا گذرانیدیم تا به قومی رسیدند که به پرستش بودهای خیش همت می گماشتن. گفتند ای موسا همان گونه که برای آنان خدایانی هست برای ما نیز خدای قرارده گفت راستی شما نادانی می کنید در حقیقت آنچه ایشان در آنند نابود و زایل و آنچه انجام میدادند باطل است گفت آیا غیر از الله معبودی برای شما بجویم با اینکه او شما را بر جهانیان فضیلت داده است و یاد کن هنگامی که شما را از فرعونیان نجات دادیم که شما را سخت شکنجه می کردند پسرانتان را می و زنانتان را زنده باقی می و در این برای شما آزمایش بزرگی از جانب پروردگارتان بود و با موسا سی شب وعده گذاشتیم و را با ده شب دیگر تمام کردیم تا آنکه وقت معین پروردگارش در چهر شب به سر آمد و موسا به برادرش هارون گفت در میان قوم من جانشینم باش و اصلاح کن و راه فسادگران را پیروی مکن و چون موسا به میعادگاه ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت اارض کرد پروردگارا خود را به من بنمای تا بر تو بنگرم فرمود هرگز مرا نخواهی دید لیکن به کوه بنگر پس اگر بر جای خود قرار گرفت بزودی مرا خواهی دید پس چون پروردگارش به کوه جلوه نمود آن را ریز ریز ساخت و موسی هوش بر زمین افتاد و چون به خود آمد گفت تو منزهی به درگاه توبه کردم و من نخستین مؤمنانم فرمود ای موسا تو را با رسالت و با سخن گفتنم با تو بر مردم روزگار برگزیدم پس آنچرا به تو دادم بگیر و سپاس گزارم باش و در الواه برای او در هر موردی پندی و برای هر چیزی تفصیلی نگاشیم پس فرمودیم آن را به جد و جهد بگیر و قوم خود را وادار کن که بهترین آن را فرا و به سرای نافرمانان را به شما می نمایانم بزودی کسانی که در زمین به ناحق تکبر می وزن. از آیاتم روی گردان سازم به طوری که از هر نشانی که از قدرت من بینگرند بدان ایمان نیاورند و اگر راه سبب را ببینند آن را برنگزینند و اگر راه گمراهی را ببینند آن را راه خود قرار قراردند این بدان سبب است که آنان آیات ما را دروغ انگاشته و قفلت ورزیدند و کسانی که آیات و دیدار آخرت را دروغ پنداشتند اعمالشان تباه شده است آیا جز در برابر آنچه میکردند کیف میبینند و قوم موسی بعد از عظیمت او از زیورهای خود مجسمه گوسالهای برای خود ساختند که صدای گاو داشت آیا ندیدند که آن گوساله با ایشان سخن نمیگوید و براهی هدایتشان نمی کند آن را به پرستش گرفتند و ستمکار بودند و چون انگشت ندامت گزیدند و دانستند که واقعا گمراه شدهاند گفتند اگر پروردگار ما به ما رحم نکند و ما را نبخشاید قطعا از یان کاران خواهیم بود و چون موسا خشم ناک و به سوی قوم خود بازگشت گفت پس از من چه بد جانشینی برای من بودید آیا بر فرمان پروردگارتان پیشی گرفتید؟ و الواه را افکن و موی سر برادرش را گرفت و او را به طرف خود کشید هارون گفت ای فرزند مادرم این قوم مرا ناتوان یافتند و چیزی نمانده بود که مرا بکشند پس مرا دشمن شاد مکن و مرا در شما رو گروه ستمکاران قرار مده موسی گفت پروردگارم من و برادرم را بیامرز و ما را در پناه رحمت خود درآور و تو مهربانترین مهربانانی آری کسانی که گوساله را به پرستش گرفتند به زودی خشمی از پروردگارشان و ضلتی در زندگانی دنیا بیشان خواهد رسید و ما این گونه دروغ پردازان را کیفن می‌دهیم ولی کسانی که مرتکب گناهان شدند آنگاه توبه کردند و ایمان آوردند قطعا پروردگار تو بعد از آن آمرزند و مهربان خواهد بود و چون خشم موسا فرونش است الباه را برداشت و در نوشته های آن برای کسانی که کس از پروردگارشان بیمناک بودند هدایت و رحمتی بود و موسا از میان قوم خود هفتاد مرد برای می آدما برگزید. و چون زلزله آنان را فرو گرفت گفت پروردگارا اگر میخواستی آنان را و مرا پیش از این حلاک میساختی آیا ما را به سزای آنچه کم خردان ما کردن حلاک این جز آزمایش تو نیست هر که را بخواهی به وسیلی آن گمرا و هر که را بخواهی هدایت میکنی تو سرور مایی پس ما را بیامرس و به ما رم کن و تو بهترین آمرزندگانی و برای ما در این دنیا نیکی مقرر فرما و در آخرت نیست زیرا که ما به سوی تو بازگشته‌ایم. فرمود عذاب خود را به هر کس بخواهم میرسانم و رحمتم همه چیز را فرا گرفته است و به زودی آن را برای کسانی که پریزگاری میکنند و زکات میدهند و آنان که به آیات ما ایمان میآورند مخرم میدارم سوره اعراف آیات 159-162 و از میان قوم موسی جماعتی هستند که به حق راهنمایی نمایی میکنند و به حق داوری می نمائند. و آنان را به دوازده اشیره که هر یک امتی بودن تقسیم کردیم و به موسا وقتی قومش از او آب خواستن وح کردیم که با اسایت بر آن تخته سنگ بزن پس از آن دوازده چشم جوشید هر گروهی آبش خور خود را بشناخت و عب را بر فراز آنان سایبان کردیم و نان و گوش بر ایشان فرو فروفرستادیم از چیزهای پاکیزی که روزیشان کردیم بخورید و بر ما ستم نکردند لیکن بر خودشان ستم میکردند و یاد کن هنگامی که بیدیشان گفته شد در این شهر سکونت گذینید و از آن هر جا که خواستید بخورید و بگویید پروردگارا را گناهان ما را فرو می‌ریزد و سجده کنان از دروازه شهر در تا گناهان شما را بر شما ببخشایم و زودی بر اجر نیکوکاران بیافزایید پس کسانی از آنان که ستم کردند سخنی را که به ایشان گفته شده بود به سخن دیگری تبدیل کردند پس به سزای آنکه ستم می از عذابی از آسمان بر آنان فرو فرستادیم سوری تاها آیات نهم الی 28 و آیا خبر موسی به تو رسید هنگامی که آتشی دید پس به خانواده خود گفت درنگ کنید زیرا من آتشی دیدم امید که پاری از آن را برای شما بیاورم یا در پرتو آتش راه خود را باز یابم پس چون بدان رسید نداد ندا داده شد که ای موسا این منم پروردگار تو پای پوش را بیرون آور که تو در وادی مقدس تو هستی و من تو را برگزیدم پس بدان چه وحی می شود گوش فراده منم من الله که جز من معبودی نیست پس مرا پرستش کن و بیاد من سلات بر پادار در حقیقت قیامت فرا رسنده است می خواهم آن را پوشیده دارم تا هرکس کس به موجب آن چه می کشد یابد پس هرگز نباید کسی که به آن ایمان ندارد و از هوس خیش پیروی کرده است تو را از ایمان به با آن باز دارد که هلاک خواهی شد و ای موسا در دست راست تو چیست گفت این عصای من است بر آن تکیه می دهم و با آن برای گوسفندانم برگ می تکانم و کارهای دیگری هم برای من از آن بر می آید فرمود ای موسی آن را بیانداز پس آن را انداخ و ناگاه ماری شد که به سرعت میخزید فرمود آن را برگیر و مترس ترس به زودی آن را به حال نخستینش باز خواهیم گردانید و دست خود را به پهلویت ببر سپید بیگزند برمیآید میآید. این معجزی دیگر است تا به تو معجزات بزرگ خود را بنمایانیم. به سوی فرعون برو که او به سرکشی برخواست است گفت پروردگارا سینه ام را گشاده گردان و کارم را برای من آسان ساز. و از زبانم گره بکشای تا سخنم را بفهمند و برای من دستیاری از کسانم قرارده هارون برادرم را پشتم را به او ستوار کن و او را شریک کارم گردان تا تو را فراوان تسبیق گوییم و بسیار بیاد تو باشیم زیرا تو همواره به حال ما بینایی فرمود ای موسا خواسته به تو داده شد و براسی بار دیگر هم بر تو منت نهادیم هنگامی که به مادرت آنچرا که باید فهم شد وح کردیم و او را در صندوقچه بگذار سپس در دریای شفکن تا دریا او را به کرانه اندازد و دشمن من و دشمن وی او را برگیرد و مهری از خودم بر تو افکندم تا زیر نظر من پرورش یابی آنگاه که خواهر تو میرفت و می آیا شما را بر کسی که احددار او گردد دلالت کنم؟ پس تو را به سوی مادرت بازگردانیدیم تا دیدهاش روشن شود و غم نخورد و سپس شخصی را کشی و ما تو را از اندوه رهانیدیم و تو را بارها آزمودیم و سالی چند در میان اهل مدین ماندی سپس ای موسی در زمان مقدر و مختزی آمدی و تو را برای خود پروردم تو و برادرت معجزههای مرا برای مردم ببرید و در یاد کردن من سسی مکنید به سوی فرعون بروید که او به سرکشی برخواسته و با او سخنی نرم گویید شاید که پند پذیرت یا بترسد آن دو گفتند پروردگارا ما میترسیم که او آسیبی به ما برساند یا آنکه سرکشی کند فرمود مترسید من همراه شمایم میشنم و میبینم پس به سوی او بروید و بگویید ما دو فرستادی پروردگار تو ایم پس فرزندان اسرائیل را با ما بفرست و عذابشان مکن پروسی ما برای تو از جانب پروردگارت معجزه‌ای آورده این و بر هر کس که از هدایت پیروی کند درود باد در حقیقت به سوی ما وحی آمده که عذاب بر کسی است که تکسیب کند و روی رویگرداند فرعون گفت ای موسی پروردگار شما دو کیست گفت پروردگار ما کسی است که هر چیزی را خلقتی که در خرو اوست داده سپس آن را هدایت فرموده است گفت حال نسل های گذشته چگونه است گفت علم آن در کتابی نز پروردگار من است، پروردگارم نه خطا می کند و نه فراموش می نماید. همان کسی که زمین را برای تان آسایشگاه ساخت و برای شما در آن راه ها ترسیم کرد و از آسمان آبی فرود آورد. پس به وسیله آن روییدنی های گوناگون جفت جفت بیرون آوردیم. بخورید و دام هایتان را بچرانید که قطعا در اینها برای خردمندان نشانه است. از این زمین شما را ایم در آن شما را باز می‌گردانیم و بار دیگر شما را از آن بیرون میآوریم. در حقیقت ما همه آیات خود را به فرعون نشان دادیم ولی او آنها را دروغ پنداش و نپذیرفت گفت ای موسی ای تا با سهر خود ما را از سرزمینمان بیرون کنی ما هم قطعا برای تو سهری مثل آن خواهیم آورد پس میان ما و خودت موعدی بگذار که نه آن را خلاف کنی و نه تو آن هم در جایی هموار موسا گفت موعد شما روز جشن باشد که مردم پیش از ظهر گرد میآیند آیند پس فرعون رفت و همه نیرنگ خود را گرد آورد و باز آمد موسا به ساهران گفت وای بر شما به الله دروغ مبندید که شما را به عذابی سخت حلاک می کند و هر که دروغ به نو نومید می گردد ساهران میان خود در باری کارشان به نظام برخواستن و به نجوا پرداختند. فرعونیان گفتند: قطعا این تن ساهران و میخواهند شما را با سهر خود از سرزمینتان بیرون کنند و آین والای شما را براندازند پس شگردهای خود را فراهم آورید و در یک صف پیش آیید که بی تردید امروز هر کفای قایب رسگاه شده است. ساهرن گفتند ای موسا یا تو می یا ما نخستین کس باشیم که میاندازیم. گفت نه بلکه شما بیاندازید. پس ناگهان ریسمان ها و چوب دستی هایشان بر اثر سهرشان در خیال او که می نمود که آنها به شتاب می خزن و موسا در خود بیمی احساس کرد. گفتیم من ترس که تو خود برتری. وانچه در دست راست داری بیانداز تا هرچه را ساختند به در حقیقت آنچه سرهم بندی کرده اند افسون افسونگر است و افسونگر هر جا برود کار نمی شود. پس ساهران به سجده رفتادند گفتند به پروردگار موسی و حارون ایمان آوردیم. فرعون گفت آیا پیش از آن که به شما اجازه دهم به او ایمان آوردید؟ قطعا او بزرگ شماست که به شما سهر آموخته است. پس بیشک دست های شما و پاهایتان را یکی از راست و یکی از چپ قطع می کنم. و شما را بر تنهای درخت خرما بدانی آویزم تا خوب بدانید عذاب کدام یک از ما سختر و پایدارتر است گفتند ما هرگز تو را بر معجزات که به سوی ما آمده و بر آن کس که ما را پدید آورده است ترجیح نخواهیم داد پس هر حکمی میخواهی بکن که تنها در این زندگانی دنیاست که تو حکم ما به پروردگارمان ایمان آوردیم تا گناهان ما و آن سحری را که ما را بدان واداشی بر ما ببخشاید و الله بهتر و پایدارتر است در حقیقت هر که به پروردگارش گناهکار رود جهنم برای اوست در آن نمی میرد و نه زندگی میابد و هر که مؤمن به او رود در حالی که کارهای شایسته انجام داده باشد برای آنان درجات والا خواهد بود بیشتهای که زیر درخت آنانها جویبارها روانست جاودانه در آن میمانند و این از پاداش کسی که به پاکی گرایید و در حقیقت به موسا وه کردیم که بندگانم را شبانه ببر و راهی خشک در دریا برای آنان پاس کن که نه از فرارسیدن رسیدن دشمن بترسی و نه از غرق شدن بیمناک باشی پس فرعون با لشکریانش آنها را دنبال کرد ولی از دریا آنچ آن را فرو پوشانید فرو پوشانید و فرعون قوم خود را گمراه کرد و هدایت ننمود. ای فرزندان اسرائیل، در حقیقت ما شما را از دست دشمنان تن راهانیدیم و در جانب راست تور با شما وعده نهادیم و بر شما نان و گوش فرستادیم. از خوراکی های پاکیزی که روزی شما کردیم بخورید ولی در آن زیاد روی مکنید که خشم من بر شما فرود آید و هرکس خشم من بر او فرود آید قطعاً در ورته حلاکت افتاده است. و به یقین من آمر زنده کسی هستم که توبه کند و ایمان بیاورد و کار شایسته نماید و به راه راست راس سپار شود. و ای موسا چه چی چیز موجب شد تا جلوتر از قومت به وعدگاه بشتابی؟ گفت اینان در پی منند و من ای پروردگارم به سویت شتافتم تا خوشنود شوی. فرمود در حقیقت ما قوم تو را بعد از عزیمت تو آزمودیم، و سامری آنها را گمراه ساخت پس موسی خشمگین و اندوهناک به سوی قوم خود برگشت و گفت ای قوم من آیا پروردگارتان به شما وعده نیکو نداد آیا این مدت به شما طولانی مینمود یا خاصیت خشمی از پروردگارتان به شما فرود آید که با وعده من مخالفت کردید گفتند ما به اختیار خود با تو خلاف وعده نکردیم ولی از زینتالات قوم بارهایی سنگی بردوش داشیم و آنها را افکنیم و خود سامری هم زینتالاتش را همین گونه بیانداخت. پس برای آنان پیکر گوسالی که صدایی داشت بیرون آورد و او و پیروانش گفتند این الله شما و الله موساست و پیمان الله را فراموش کرد مگر نمی بینن که گوسال پاسخ و سخنان آنان را نمیدهد و به حالشان سود و زیانی ندارد و در حقیقت هارون قبلا به آنان گفته بود ای قوم من شما به وسیله این گوساله مورد آزمایش قرار گرفتید و پروردگار شما الله رحمان است پس مرا پیروی کنید و فرمان مرا پذیرا باشید گفتند ما هرگز از پرستش آن دست بر نخواهیم داشت تا موسی به سوی ما بازگردد موسی گفت ای حارون وقتی دیدی که آنها گمراه شدند، چه چیز مانع تو شد که از من پیروی کنی آیا از فرمانم سر باز زدی؟ گفت ای پسر مادرم نه ریش مرا بگی و نه موی سرم را من ترسیدم بگوی میان بری اسرائیل تفرق انداختی و سخنم را مراعات نکردی موسی گفت ای سامری منظور تو چه بود؟ گفت به چیزی که دیگران به آن پی نبردند پی بردم و به قدر مشی از رد پای فرستاده برداشتم و آن را در پیکر گوساله انداختم و نفس من برایم چنین فریب کاری کرد گفت پس برو که بهره تو در زندگی این باشه که بگویی به من دست مزنی و تو را معیدی خواهد بود که هرگز از آن تخلف نخواهی کرد و اینک به آن خدایی که پیوست ملازمش بودی بنگرد آن را قطعا می سوزانیم و خاک سرش می کنیم و در دریا فرو می پاشیم. معبود شما تنها آن الله هست که جز او معبودی نیست و دانش او نیست دانش همه چی چیز را در بر گرفته است سوری شعرا آیات دهم ده الی اله شم و یاد کن هنگامی را که پروردگارت موسا را ندا در داد که به سوی قوم ستم کار برو قوم فرعون آیا تقوای الهی پیشه نمیسازند، سازند گفت پروردگارا می ترسم مرا تکسیب کنند و سینم تنگ می گردد و زبانم باز نمی شود پس به سوی هارون بفرست و از طرفی آنان بر گردن من خونی دارند و می ترسم مرا بکشند. فرمود نه. چنین نیست. نشانه‌های ما را بر آنان ببرید که ما با شما شنمنده‌ای پس به سوی فرعون بروید و بگویید ما پیامبر پروردگار جهانیانیم فرزندان اسرائیل را با ما بفرست فرعون گفت آیا تو را از کودکی در میان خود پرورش ندادیم و سالیانی چند از عمرت را پیش ما نماندی و سرانجام کار خود را کردی و تو از ناسپاسانی موسی گفت آن هنگامی مرتکب شدم که از گمراهان بودم و چون از شما ترسیدم، از شما گریختم، تا پروردگارم به من دانش بخشید و مرا از پیامبران قرار داد. و آیا اینکه فرزندان اسرائیل را بنده خود ساختهای ای است که منتش را بر من می‌نهی؟ فرعون گفت و پروردگار جهانیان چیست؟ گفت پروردگار آسمانها و زمین و آنچه میان آن دوست اگر اهل یقین باشید. فرعون به کسانی که پیرامونش بودند گفت آیا نمی‌شوید؟ موسا دوباره گفت پروردگار شما و پروردگار پدران پیشین شما فرعون گفت واقعا این پیامبری که به سوی شما فرستاده شده سخت دیوانه است موسا گفت پروردگار خاور باختر و آنچه میان آن دوست اگر تعقل کنید فرعون گفت اگر خدایی غیر از من اختیار کنی قطعا تو را از جمله زندانیان خواهم ساخت گفت اگر اگرچه برای تو چیزی آشکار بیاورم گفت اگر راست میگویی آن را بیاور پس اصهای خود را بیفکند و به ناگاه آن ماری نمایان شد و دستش را بیرون کشید و به ناگاه آن برای تماشاگران سپید مینمود. فرعون به سرانی که پیرامونش بودند گفت واقعا این ساهری بسیار داناست میخواهد با سحر خود شما را از سرزمینتان بیرون کند اکنون چه رأی میدهید؟ گفتند تصمیم درباری او و برادرش را تأخیر بینداز و مأموران جمعآوری را به شهرها بفرست تا هر ساهر ماهری را نزد تو بیاورند پس ساحران برای موعد روزی معلوم که شدند و به توده مردم گفته شد آیا شما هم جمع خواهید شد بدین امید که اگر ساحران غالب شدند از آنان پیروی کنیم و چون ساحران پیش فرعون آمدند گفتند آیا اگر ما غالب واقعا برای ما موسی خواهد بود گفت آری و در آن صورت شما حتما از زمری مغربان خواهید بود موسا به آنه گفت آنچرا شما می اندازید, اندازید پس ریسمان ها و چوب دستی هایشان ها را انداختند و گفتند به عزت فرعون که ما پیروزیم پس موسا اصایش را انداخت و بناگاه هرچرا به دروغ برساخته بودند بلعید در نتیجه ساهران به حال در افتادند. گفتند به پروردگار جهانیان ایمان آوردیم پروردگار موسی و هارون گفت آیا پیش از آنکه که به شما اجازه دهم به او ایمان آورید، قطعا او همان بزرگ شماست که به شما سهر آموخته به زودی خواهید دانست حتما دست ها و پاهای شما را از چپ و راز خواهم برید و تان را به دار خواهم آویخت گفتند باکی نیست ما روی به سوی پروردگار خود می آوریم ما امیدواریم که پروردگارمان گناهانمان را ببخشاید چرا که نخستین ایمان آورندگان بودیم و به موسی وحی کردیم که بندگان مرا شبانه حرکت زید شما مورد تعقیب قرار خواهید گرفت پس فرعون مأموران جمعآوری خود را به شهرها فرستاد و گفت اینها عدی ناچیزند و راسیانها ما را بر سر خشم آوردند ولی ما همگی به حال آماده باش در آمدیم سرانجام ما آنون را از باقستان ها و چشم ها و گنجین ها و جایگاه های پر نعمت بیرون کردیم اراده ما چنین بود و آن نعمت ها را به فرزندان اسرائیل می پس هنگام برآمدن آفتاب آنها را تعقیب کردند چون دو گروه هم دیگر را دیدن یاران موسا گفتند ما قطعا گرفتار خواهیم شد گفت چنین نیستی را پروردگارم با من است و به زودی مرا راه نمایی خواهد کرد پس به موسی وحه کردیم با اصهای خود بر این دریا بزن تا از هم شکافت و هر پاری همچون کوهی عظیم گردید و دیگران را بدن جا نزدیک گردانیدیم و موسی و همه کسانی که همراه او بودن نجات دادیم. انگاه دیگران را غرق کردیم. مسلما در این واقعه عبرتی بود ولی بیشترشان ایمان آورنده نبودند و قطعا پروردگار تو همان شکست ناپذیر مهربان است. سوره صافات آیات صد چهاردهم هم دوم و در حقیقت بر موسا و هارون منت نهادیم ناد و آن دو و قومشان را از اندوه بزرگ رهانیدیم و آنان را یاری دادیم تا ایشان قالب آمدن و آن دو را کتاب روشن دادیم هر دو را به راه راست هدایت کردیم و برای دو در میان آیندگان نام نیک به جای گذاشتیم درود بر موسا و هارون ما نیکو و کاران را چنین پاداش میدهیم زیرا آن دو از بندگان با ایمان ما بودند سوره بقره آیات 47 اله 74 ای فرزندان اسرائیل از نعمتهایم که بر شما ارزانی داشتم و از این که من شما را بر جهانیان فضیلت دادم یاد کنید و بترسید از روزی که هیچ کس چیزی از عذاب الله را از کسی دفع نمی و نه از او شفاعتی پذیرفته و نه به جای وی بدلی گرفته میشود و نه یاری خواهند شد و بیا دارید آنگاه که شما را از چنگ فرعونیان رهانیدیم آنان شما را سخت شکنجه می میکردند، پسران شما را سر میبریدند و زنهایتان را زنده میگذاشتند و در آن امر بلا و آزمایش بزرگی از جانب پروردگارتان بود و هنگامی که دریا را بر شما شکافتیم و شما را نجات بخشیدیم و فرعونیان را در حالی که شما نظاری می کردید قهر کردیم و آنگاه که با موسا چهل شب قرار گذاشیم آنگاه در قیاب وی شما گوساله را به پرستش گرفتید در حالی که ستمکار بودید پس از آن بر شما بخشودیم باشد که شک گذاری کنید و آنگاه که موسا را کتاب و فرقان دادیم شاید هدایت یابید و چون موسا به قوم خود گفت ای قوم من شما با بپرستش گرفتن گو ساله بر خود ستم کردید پس به درگاه آفریننده خود توبه کنید و خطاکاران خودتان را به قط برسانید که این کار نزد آفریدگارتان برای شما بهتر است پس الله توبه شما را پذیرفت که او توبه پذیر مهبان است و چون گفتید ای موسی تا الله را آشکارا نبینیم هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد پس در حالی که مینگریستید سایقه شما را فرو گرفت سپس شما را بعد از مرگتان برانگیختیم باشد که گذاری کنید و آب را سایبان شما کردیم و نان و گوش را بر شما نازر کردیم و گفتیم از آن آنچه روزیتان کردیم بخورید و با این کارها بر ما ستم نکردند بلکه بر خویشتن ستم میکردند و نیز به یاد آورید، هنگامی که گفتیم، بدین شهر آیید و از نعمتهای آن هر گونه خواستید فراوان بخورید و سجده کنان از درد در و بگویید پروردگان را، گناهان ما را بریز تا خطاهای شما را ببخش و پاداش نیکوکاران را خواهیم افسود، اما کسانی که ستم کرده بودند، آن سخن را به سخن دیگری غیر از آنچه به ایشان گفته شده بود تبدیل کردند و ما نیز بر آنان که ستم کردن به سزای اینکه نافرمانی پیشه کرده بودن از آبی از آسمان فرو فرستادیم و هنگامی که موسا برای قوم خود در پی آب برآمد گفتیم با اسایت بر آن تخت سنگ بزن پس دوازده چشمه از آن جوشیدن گرفت به بگونی که هر قبیله ای آبشخور خود را میدانست و گفتیم از روزی الله بخورید و بیاشامید ولی در زمین سر به فساد برمدارید. و چون گفتید ای موسی هرگز بر یک نوع خوراک تاب نیاوریم از الله خود برای ما بخوا تا از آنچه زمین میرویاند از قبیل سبزی و خیار و سیر و عدس و پیاز برای ما برویاند موسی گفت آیا جای چیز بهتر خواهان چیز پس پسترید پس به شهر فرود آیید که آنچرا را خواستید برای شما در آنجا محیاست و, و داغ خاری و نداری بر پیشانی آنان زده شد و به خشم الله گرفتار آمدند چرا آنان به نشانهای الله وزیده بودند و پیامبران را به ناحق می کشتن. این از آن روی بود که سرکشی نموده و از حد در گذرانیده بودند در حقیقت کسانی که ایمان آورده و کسانی که به واسطی تورات هدایت شدند و نصارا و صابعان هر که به الله و روز قیامت ایمان داشت و کار شایسته کرد پس اجرشان را پیش پروردگارشان خواهند داشت و نه بیمی بر آنان است و نه اندوهگین خواهند شد و چون از شما پیمان و محکم گرفتیم و کوه تو را بر فراز شما افراشیم و فرمودیم آنچرا به شما دادیم به جد و جهد بگیرید و آنچرا در آن است به خاطر داشته ماشید باشد که به تقوا گرایید سپس شما بعد از آن پیمان رویگردان شدید و اگر فضل الله و رحمت او بر شما نبود مسلما از یانکاران بودید و کسانی از شما که در روز سبت از فرمان الله تجاوز کردند نیک شناختید پس ایشان را گفتیم باشید آوارگانی رانده شده و ما آن عقوبت را برای حاضران و نسلهایی بعد از آن عبرتی و برای پرهیزکاران پندی قرار دادیم و هنگامی که موسی به قوم خود گفت الله به شما فرمان میدهد که ماده گاوی را سر ببرید گفتند آیا ما را هم میگیری گفت پناه میبرم به الله که مبادا از جاهلان باشم گفتند پروردگارت را برای ما بخوا تا برای ما روشن سازد که آن چگونه است گفت وی می‌فرماید آن ماده گاوی است نه پیر و نه خردسال بلکه میان سالی است بین این دو پس آنچه را بدان معمورید جا آرید گفتند از پروردگارت بخوا تا بر ما روشن کند که رنگش چگونه است گفت وی می‌فرماید آن ماده است زرد یکته و خالص که رنگش بینندگان را شاد میکند گفتن از پروردگارت بخوا تا برای ما روشن گرداند که آنچگونه گاوی است زیرا که این ماده گاو بر ما مشتبه شده و ما ایشا الله حتما هدایت خواهیم شد گفت وی میفرماید در حقیقت آن ماده است که نه رام است تا زمین را شخم زند و نه کیسا را آبیاری کند بینقص است و هیچ لکی در آن نیست گفتن اینک سخن درست آوردی پس آن را سر بریدند و چیزی نمانده بود که نکنند و چون شخصی را کشید و درباری او با یکدیگر به سیتیزه برخواستید و حال آنکه الله آنچه را که کتمام می کردید آشکار گردانید پس فرمودین پاری از آن گاو سربریده را به آن مقتول بزنید تا زنده شود اینگونه الله مردگان را زنده می کند و آیات خود را به شما مینمایاند باشد که بیاندیشید سپس های شما را بعد از این واقع سخت گردانید. همانند سنگ یا سختتر از آن چرا که از برخی سنگ ها جورهای بیرون می زند و پاری از آنها می شکافد و آب از آن خارج می شود و برخی از آنها از بیم الله فرو می ریزد و الله از آنچه می کنید قفل نیست. سوره حود آیات ۹۶ الی ۹۹ و براسی موسی را با آیات خود و حجتی آشکار به سوی فرعون سران قوم وی سادی ولی سران از فرمان فرعون پیروی کردن و فرمان فرعون ثباب نبود روز رساخیز پیشا پیش قومش می و آنان را به آتشدن میآورد، آورد و جهنم چه جایگاه بدی برای واردان است و در این دنیا و روز قیامت به لعنت بدرقه شدن و چه بدعتهایی نصیب آنان می شود سوره مؤمنون آیات 45 الى 49 سپس موسا و برادرش حارون را با آیات خود و حجتی آشقا فرستادیم به سوی فرعون سران قوم او، ولی تکبر نمودن و مردمی گردن کش بودن پس گفتند آیا به دو بشر که مثل خود ما هستند و قوم آنها بندگان ما می باشند، ایمان بیاوریم؟ در نتیجه آن را دروگو خوندن پس از زمره هلاک شدگان گشتن و به یقین ما به موسا کتاب دادیم باشد که آنان به راه راست روند سوره نمل آیات هفت الی چارده یاد کن حنگامی که موسا به خانوادی خود گفت من آتشی به نظرم رسید به زودی برای شما خبری از آن خواهم آورد یا شعله آتشی برای شما می آورم باشد که خود را گرم کنید چون نزد آن آمد نظر رسید که خود آنکه در کنار این آتش و آنکه پیرامون آن است و منزده است الله پروردگار جهانیان ای موسا این منم الله عزیز حکیم و اسایت را بیفکن پس چون ان را همچو ماری دید که می جنبد، پشت گردانید و به عقب باز نگشت ای موسا مترس ترس که فرستادگان پیش من نمی ترسند لیکن کسی که ستم کرده سپس بعد از بدی نیکی را جای آن انگردانیده بدانه که من آمر زنده و مهربانم و دستت را در گریبانت کن تا سپید و بیعیب ای بیرون آید اینها از جمله نشانهای نُهگانی است که باید به سوی فرعون قومش ببری زیرا که آنان مردمی نافرمانند و هنگامی که آیات روشنگر ما به سویشان آمد گفتند این جادوی آشکار است و با آنکه دل‌هایشان بدان یقین داشت از روی ظلم و تکبر آن را انکار کردند پس ببین فرجام فسادگران چگونه بود سوره قافر آیات 23 الی 54 رون و یقین موسا را با آیات خود و حجتی آشگاه فرستادیم به سوی فرعون حامان و قارون اما آنان گفتند افسونگری شیاد است پس وقتی حقیقت را از جانب ما برای آنان آورد گفتند پسران کسانی که به او ایمان آوردند بکشید و زنانشان را زنده بگذارید ولی نیرنگ کافران جز در گمراهی نیست و فرعون گفت مرا بگذارید موسا را بکشم تا پروردگارش را بخواند. من میترسم آیین شما را تغییر دهد یا در این سرزمین فساد کند و موسی گفت من از هر متکبری که بروز حساب عقیده ندارد به پروردگار خود و پروردگار شما پناه بردم. و مردی مؤمن از خاندان فرعون که ایمان خود را پنهان می‌داشت گفت آیا مردی را می‌کشید که می‌گوید پروردگار من الله هست؟ و مسلما برای شما از جانب پروردگارتان دلایل آشکاری آورده و اگر دروگو باشد دروغش به زیان اوست و اگر راستگو باشد برخی از آنچه به شما وعده میدهد به شما خواهد رسید چرا که الله کسی را که تجاوز کار دروگو باشد هدایت نمی کند. ای قوم من امروز فرمان از آن شماست و در این سرزمین مسلطید ولی چه کسی ما را از بلای الله اگر به ما برسد حمایت خواهد کرد فرعون گفت جز آنچه میبینم به شما نشان نمیدم و شما را جز به راه راست راهبر نیستم و کسی که ایمان آورده بود گفت ای قوم من من از روزی مثل روز دستهای مخالف الله بر شما میترسم از سرنویشتی نزیر سرنوشت قوم نوح و عاد و سمود و کسانی که بعد از آنها و وگرنه الله بر بندگان خود ستم نمی کند و ای قوم من من بر شما از روزی که مردم یکدیگر را بیاری هم همندادر میدهند بیم دارم روزی که پوش کنن باز میگردید برای شما در برابر الله هیچ حمایتگری نیست و هر کی را الله گمراه کند او را راهبری نیست و بی یقین یوسف پیش از این دلایل آشکار برای شما آورد و از آنچه برای شما آورد همواره در تردید بودید تا وقتی که از دنیا رفت و گفتید الله بعد از او هرگز فرستادی را برنخواهد دنگیخ. اینگونه الله هر که را تجاوز گر شکاکس پی میگذارد. کسانی که درباری آیات الله بدون حجتی که برای آنان آمده باشد مجادله میکنند. این ستیزی در نزد الله و نزد کسانی که ایمان آورده اند معیِ بزرگی است اینگونه الله بر دل هر متکبر و زورگوی مهمند. و فرعون گفت ای حامن برای من برجی بلند بساز شاید من به آن راه ها برسم راه های آسمان ها تا از الله موسی اطلاع حاصل کنم و من او را سخت دروغ پرداز می پندارم. و اینگونه برای فرعون زشتی کارش آراسه شد و از راه راست باز و نیرنگ فرعون جز به تباهی نی و و آنکس که ایمان آورده بود گفت ای قوم من مرا پیروی کنید تا شما را به راه درست هدایت کنم ای قوم من، این زندگان دنیا تنها کالای ناچیز است و در حقیقت آن آخرت است که سرای پایدار است. هرکی را که بدی کند جز بمانند آن کیفر نمی یابد و هرکی کار شایست کند چه مرد باشد یا زن در حالی که ایمان داشته باشد در نتیجه آنان داخل بهش می شوند و در آنجا بی حساب روزی می یابد و ای قوم من، چه شده است که من شما را به نجات فرا میخوانم و شما مرا به آتش فرا میخوانید مرا فرا میخوانید تا به الله کافر شوم و چیزی را که بدان علمی ندارم با او شریک گردانم و من شما را به سوی آن ستودی آمرزنده دعوت می کنم را مرا به سوی آن دعوت می کنید به ناچار نه در دنیا و نه در آخرت در خور خواندن نیست و در حقیقت بازگشت ما به سوی الله هست و تجاوزکاران هم همدمان آتشند. پس به زودی آن به شما میگویم گویم بیاد خواهید آورد و کارم را به الله واگذار میکنم. الله هست که به حال بندگان خود بیناس پس الله او را از عواقب سور آنچه نیره میکردند حمایت فرمود و فرعونیان را از سخت فرو گرفت. اینک هر صبح و شام بر آتش عرضه می شوند و روزی که رستاخیز بر پا شود فریاد میرسد که فرعونیان را در سخت عذاب از آب و آنگاه که در آتش شروع به آوردن و حجت می کنن. زیر دستان به کسانی که گردنکش بودند میگویند ما پیرو شما بودیم پس آیا میتوانید پاری از آن آتش را از ما دفع کنید کسانی که گردنکشی میکردند میگویند اکنون همه ما در آن هستیم الله هست که میان بندگان خود داوری کرده است و کسانی که در آتشان به نگهبانان جهنم میگویند پروردگارتان را بخوانید تا یک روز از این عذاب را به ما تخفیف دهد میگویند مگر یانبرانتان دلایل روشن به سوی شما نیاوردند میگویند چرا میگویند پس بخوانید ولی دعای کافران جز در بیراه نیست در حقیقت ما فرستادگان خود و کسانی که گرویدهاند در زندگانی دنیا و روزی که گواهان بر پای میایستند قطعا یاری میکنیم همان روزی که ستمگران را اوز سود نمیداد، برای آنان لعنت است و بر ایشان بدفر آن سراست و قطعا موسا را هدایت دادیم و به فرزندان اسرائی تورات را به میراث نهادیم که هدایت و تذکری برای خردمندان است. سوری یونس آیات هفتاد الی 92. سپس بعد از آنان موسا و حارون را با آیات خود به سوی فرعون و سران و قوم وی فرستادیم ولی آنان گردنکشی کردند و گروهی مجرم بودند. پس چون حق از نزد ما به سویشان آمد، گفتند قطعا این سهری آشکار است. موسی گفت آیا وقتی حق به سوی شما آمد میگویید این سهر است؟ آیا این سهر است و حال آنکه جادوگران رهزگار نمیشوند؟ گفتند آیا به سوی ما آمده ای تا ما را از سنتی که پدران ما را بر آن یافته ای بازگردانی؟ و بزرگی در این سرزمین برای شما دوتن باشد، ما به شما دوتن ایمان نداریم. و فرعون گفت هر جادوگر دانایی را پیش من آورید. و چون جادوگران آمده اند، موسی به آنان گفت آنچرا می اندازید بیاندازید اندازید. پس چون افکندن موسی گفت را شما به میان آوردید سر است. به زودی الله را باطل خواهد کرد. آری الله کار مفسدان را تعیید نمی کند. و الله با کلمات خود حق را ثابت میگرداند هرچند مفسدان را خوش نیاید سرانجام کسی به موسی ایمان نیاورد مگر فرزندانی از قوم وی در حالی که بیم داشتند از آنکه مبادا فرعون سران آنها ایشان را آزار رساند و در حقیقت فرعون در آن سرزمین بر تریجوی و از اصرافکاران بود و موسی گفت ای قوم من اگر به الله ایمان آوردهاید و اگر اهل تسلیمید بر او توکل کنید پس گفتند بر الله توکر کردیم. پروردگارا ما را برای قوم ستمکار و آزمایش قرار مده و ما را به رحمت خیش از گروه کافران نجات ده و به موسا و بلادرش فهر کردیم که برای قوم خود در مصر خانه های ترتیب دهید و خانه های خیش را روی روی هم قرار دهید و سلات بر پا دارید و مؤمنان را مجید. موسی گفت پروردگارا تو به فرعون اشرافش در زندگانی دنیا زیور و اموال داده ای. پروردگارا تا خلق را از راه تو گمراه کنند پروردگارا اموالشان را نابود کن و آنان را در دل سخت کردند که ایمان نیاورند تا عذاب دردناک را ببینند فرمود دعای هر دوی شما پذیرفته شد پس ایستادگی کنید و راه کسانی که نمیدانند پیروی مکنید و فرزندان اسرائی را از دریا گذرانی دیم پس فرعون سپاهیانش از روی ستم و تجاوز آنان را دنبال کردند تا وقتی که در شرف غرق شدن قرار گرفت گفت ایمان آوردم که هیچ معبودی جز آنکه فرزندان اسرائیل به او گرویدن نیست و من از تسلیم شدگانم اکنون در حالی که پیش از این نافرمانی میکردی و از بودی ما امروز پیکرت را از آب میرهانیم تا عبرت آیندگان شوی و همانا بسیاری از مردم از آیتهای ما بیخبرند. سوری انبیا آیه 48 و در حقیقت به موسا و حارون فرغان دادیم و کتابشان برای پریزگاران روشنایی و است. سوری اسرا آیات صد یک الاسد چهار و در حقیقت ما به موسا نه نشانی آشکار دادیم. پس از فرزندان اسرائیل بپرس آنگاه که نزد آنان آمد، و فرعون به او گفت ای موسا من جدا تو را افسون شده میپندارم گفت قطعا میدانی که این نشان ها را که باعث بینش هاست جز پروردگار آسمان ها و زمین نازل نکرده است و راسی ای فرعون تو را تباه شده میپندارم پس فرعون تصمیم گرفت که آنان را از سرزمین مصر برکند پس او و هر کی با وی بود همه را قهر کردیم پس از او به فرزندان اسرائیل گفتیم در این سرزمین ساکن شوید و چون وعده آخرت فرا رسد شما را همه با هم محشور می کنیم در آخر از اینکه به سخنان بنده پیرامون موضوع و سرگذشت موسای نبی گوش کردید کمال تشکر رو دارم پروردگار را در این دنیا به ما نیکی و در آخرت نیز نیکی عطا کن و ما را از عذاب آتش جهنم دور نگهدار یاربچین باد و سلام علیکم و رحمت الله و برکات